بسم الله الرحمن الرحيم رسيد بديم بيت السيو بانجون خونديم الان رسيدين ببيت السيو الشيشم در بيت السيو الشيشم ميجاية ولا, ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ميجد حكم تمام نميشي كامل نميشي مقر إنكي تماما الشروط جمبا شند والموانع ترتفئ وموانع مرتفئ شرائط بس بدون جمشدن الشرايط ومرتفئ بودن موانع حكم كامل نمشي ولا يتم الحكم حتى تجتمع وكامل نمشي حكم طيب انك جمشد كل شروط تماما شروط كل فائل شيء والموانع ترتفع وموانعهم كي بشه؟ برداشته بشه بس, بس انجريا ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط ولي بات واجب ضرورت الشهري سكون داران دينا ويالله هذا ايرابين در اس شنين. بس ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل شروط وقامل لم يشه حكم تاين كي جن تمام الشروط والموانع ترتفع وموانعهم مرتفع بشن بالي یه ای هست در نصر چونین میارن لابد فی الحکم من استکمال شروط و الموانع المانه در حکم میگه باید شروط کامل باشن و معانه چی بله مثلا وزو برای نماز چیه؟ و وحیز معانه هست تا شرایط نماز باهم کامل نشن؟ و موانعش برداشته <تصفيق> بالی در تعریف مانع میارند ما یلزم من وجوده العدم ولا يلزم یلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته کلحیزی مع الصلاة فهو مانع منها حد آنس که ما من لازمی میشه از وجودش ادم یعنی اگر مانه وجود داشته باشه اون حکم معدومه اون حکم وجود نداره اگر حیز باشه نمازی در کار پس ما یلزم من وجودش الادم آن است که لازم بشه از وجودش ادم حکم ادم چی؟ ادم حکم اما از ادمش وجود الزامی نمیشه برعکس از عدمش وجود حکم ال... الزامی نمیشه نه وجودش و نه عدمش با وجود با نبود مانع نه وجود و نه عدم حکم لزاتی الزامی نمیشه پس قاعده کلی میگه لاابوت در الحکم من استكمال شروط و انتفاء الموانع در حکم باید شروط کامل باشن و موانع هم منتفی باشن. همین بحث در بحث تکفیر هم اونجا میارند در بحث چی؟ تکفیر هم بله که میگند شرایط کامل باشه اون طرف مکلف باشه مثلا عالم باشه مختار باشه و موانع هم چی باشند؟ بترشان. طرف اهل تعویل نباشه جانه باشند بله جهل نداشته باشه مجبور نباشه خیلی ها یه چیزی رو روی تعویل به این نتیجه رسیدند به این نتیجه تعویلش میکنن برداشتشون چیز دیگه هست خوب اما قائده بعدی و من اتى بما عليه من عمل وقد استحق ما له على العمل قائده بيت با بعديل با این مسئله رو مطرح میکنه که ما مترتب على المعذون فيه ياخذ حکمه آنچه که مترتب میشه بر معذون فی حکم معذون فيه رو میگیره هر چیزی که مترتب بر معذون فيه بشه حکم معذون فيه رو میکنه میگیره مثلا مثلا به عنوان مثال میآوردن آوردن اگر شخصی اومد و وظیفه البته شخصی که وزیفه اومد و دست معصوم نفس رو چه کرد؟ قعد کرد و همین کار سبب شد که اون شخص چی بشه؟ تلف بشه لیزم میگه برش دیا و ضمانتی نیست چون اون قعد چی بوده؟ معزون فی بوده چی بوده؟ بس ما ترتب على المعظن فيه يأخذو حكمه أنت كم مترتب برمعظن فيه يعني در در آثار شمات حكمه من معظن فيه ميكره ومن أتى بما عليه من عمل وهركس أنجام داد كاريروك برشبوت مكلفبوت وقد استحق ما له على الأمل وقد استحق ما له على الأمل و مستحق حق بود مستحق كيف بود؟ در نتيجة حكم رو يقول حكم معزل فيه ميجره. بس بس در به شکلی دیگه همینو آورده است اذا ادده ما علیه وجب له ما جعل له علیه همین مسئله رو بیان میکنه زمانی که اومد شخص وزیفش رو انجام داد زمانی که اومد شخص چکار کرد؟ همون چیزی براش واجب میشه که بر علیهش هست همون چیزی براش واجب میشه که بر علیهش مثالش هم همین مثالی بود که آوردم. اگر شخص اومد و دست معصوم و نفسی رو که درش اجازه بود قطع کرد بر این شخص زمانتی وجود ندارد و قصاصی هم وجود ندارد اگر که اون آقا از بین بره مانند مسلمانی که دست دوزی رو کرده است که اون سببش حد شده است سبب چی شده است حد. و در نتیجه هم اومد و دستش قطع شد و همین قطع دست سبب شد که شخص چه بشه فوت. فوت بشه میگه زمانی بر قد کننده نیست قد کننده زامن نیست که بیاد قصاص بده و همچنین قواد هم برش نیست. قصاص هم برش نیست. ولی اگر غیر معذون لهو بود. شخص اجازه بهش داده نبود. این حکومت منو اجازه نداده بود که برم دست و کنم. من رفتم این کار رو کردم. خب در این صورت بر من زمان هست و قصاص هم هست. فومن اتى بما عليه من عمل هر كه سومد اون كاري بود عليهش بود انجامش من اتى بما عليه من عمل وقد استحق ما له على العمل وان ترى مستحق بود برش نيست و حکم معزونفی فیو چی کار میکنه؟ میگیره ما ترتب علی المعزونفی یعخوزو حکمه ما ترتب علی المعزونفی چی؟ یعخوزو حکمه اون کشته شدنش حکم چیش میگیره؟ قطع دستش رو یعنی چطوری در دستش طرف زامن نبود چطوری در قطع دستش قصاص برش نیومد اون آثاری که مترتب شدن هم حکم همین رو در رفتن جانش هم پس قصاص و ضمانتی در کار نیست بیت بعدی میگه و کل حکم دائر ماعله وهي التي قد اوجبت لشرعیته بله این قاعده مشهور یک میگه الحکم يدور مع علته وجودا وعدما حکم دور میزنه همراه با علتش وجودان و عدما یعنی yani اگر علت باشه حکم هست اگر نباشه حکم نیست پس الحکم یدور مع علته وجودا و عدما و كل حکم دائر مع علته و هر حکم دائر است همراه با علتش و هی علتی قد اوجبت لشرعیته این هی به علت برمگرده و علت هست ك... که اون حکم چکار کرده است؟ سبب؟ وجوب شریع شده است الحکم و یدورو معا علته وجودا و عدما دیگه داستانش حل شد اینو البته بحث خیلی طولانیه در اصول فقه که راحای شیوه پیدا کردنه علت خیلی جا خود نصوص دلالت بر علت میکنن مانند این که پیغانبر صلی و وسلم گفت که انما نهیتو کن من اجل دافت علتی دفت تا و ادخر و تصدق در بحث ذخیره کردن قربانی ابتدا نه کرد که قربانی رو ذخیره نکون ولی خودش علت رو بیان کرد که من اجل ضاف بخاطره بله بخاطر افرادی که از بادی با نشینان می اومدند برات که گوشتی پیغمبر هم گفت که پس ذخیره نکنید بدید به بخورند پس این من علتش چی بود دافه بود به خاطر چی بود؟ به خاطر افرادی که از بیابان میوانند توی شهر خوشکسالی بود نه؟ پس حکم یا دور و معه علته وجودن و عدمان این قاعده البته برای اغلبیت هست یک سری استثناهای هم درش وجود داره مثلا میارن که میگن منتفی بودن بعضی از علتها سبب نمیشه که حکم همچی بشه البته اینا توضیحاتی هستن که در این مورد می‌گردند. پس قاعده این قاعدهی که میگیم قاعده غالب هست ولی یک سری استثناهایی درش وجود داره بعضی جا میدونی که مثلا علت از بین رفته ها ولی هنوز حکم سر جاش مونده. مثلا پیغمبر صلی الله علیه سلم اون دفعه بیارانش گفت که شما چند رو سری برید تا مردم مشرک مکی فکر نکنند مسلمان ها چی هند همون بحث رمل در بحث تواف ولی الان دیگه اون علت نمونده مشرکی نیست ولی باز هم اون کار رو میکنند بالی فس الحكم يدور مع علته وجودا وعدما بيع بيع كرت وبيعته بعدي وكل شرط لازم للآقد في البيع والنكاح والمقاصد وكل شرط لازم للآقد في البيع والنكاح والمقاصد ميجي هر شرط لازم هست بر عقد در معامله و نکاح خو مقاصد شرطی رو که شخص قبول کرده در قرارداد برش جاست لازمه لازمه شخصی رو که شخصی که شرطی رو در قرارداد قبول کرده برش لازم است و کل شرتن لازمان لیل فی فلبي و النکاحی و المقاصدی الا این بیت هنوز ادامه داره شرطان حللت محرمان مگر اون شرط هایی که حرامی رو حلال کنند مگر اون شرط هایی که حرامی رو چکار کنند مگر شرطی که سبب بشه حرامی از حرام های خداوندگی بشه حلال بشه او اکسی یا برعکسش شرطی که حرام بکند حلالی را یا شرطی که حلال کند حرامی را یا شرطی که حرام کند حلالی را او اکسه همین میگه الا شروطا حللت محرما ما غير حلال كونتي را حرامي را او عكس يعني شروطا حرمت محللا يا حلالا ها نعم حلالا بله سلام بس ما غير شروطي حر... حلال كنه حرامي را او اکسه یا بر اکسش شروطی که حرام کند تیرا حلالی را فباطلاتو در این صورت اینو هستند هستن باطلند فعلما بدان خوب این فعلما اون الف الف اطلاق چون در این ما نصوص دارین اوفو بیل مقود المسلمون علا شروطهم مگر جایی که حل... حرامی حلال شود یا حلالی حرام شود که خودش نص داریم کل شرط لیس فی کتاب اللهی فهو باطل با نس شرعی در تضاد باشه با مقصدی از مقاصد کلی شریعت در باشه در تضاد باشه اون شرط دیگه به درد نمیخوره پس شرط شد بر دو نو شرط صحیح و شرط باطل شرط صحیح اینه که مثلا شما میایی زنی رو باش ازدواج میکنی شرط نگذاره آقا بغل خونه مادرم برای من خونه ای درست کن خب اگه شما قبول کردی این شرط برای چی میشه؟ لازم میشه ولی یک شرط باطل اینه که مثلا شما میخوایی زنی بگیری شرط بگذار که در ماه فقط یه شب خونه من باشه. که مثلا شرط بگذار که به این مختلفی نمیگم به شرط متفق بیا. مثلا داره میخواد یکی بگیره. این زن داره میخواد یکی بگیره اون میگه به این شرط ازدواج من یکی رو طلاق. بله. البته باز شرطه مثلا مسائل اختلافی اند. ولی برعکس نیست که بگه تو حق نداری زنی دیگه رو میگیری. مثلا مثلا زنی بگیره شرط بگذاره که آقا هم بسری باش نکنه خب این شرط شرط چیه چون هدف از نکاح چیه هم بسریه دیگه چون اینجا این شرط بر میگرده به اون نفی اصل شرط ساده چون بعضی شرط ها اختلافی هم بله احسن شرط ساده شرط زیاده بله بله این شرط شرط چیه على بعدي تستعمل القره عند المبهمي من الحقوق او لدى التزاحمي مي قره استعمال ميشه هنگامي كحقوق مبهم باشن يا ترافیک باشه در حقوق چی باشه ترافیک باشه به عنوان مثال در کتب فقی مثلا آوردن توستعملو القرآتو اندال مبهمی من الحقوق. میگه قرآ استعمال میشه زمانی که حقوق مبهم باشند. اولادت تظاهیم یا اینکه حقوق ترافیک باشه. در اشتواشه زیاد باشند. مثال اولی اینو به عنوان مثال ذکر کردن. میگن زمانی که شخص یکی از زنانش رو شکل مبهم اومد و تلاق داد. تعین نکرد. بعضی از فقه اومدن گفتند پس اینجا میاد بین اینا چیکار میکنه این مثال در فقه در نزدیکی، هنابله مثلا میگن اگر چنانچه شخص اومد و یکی از زنانش رو به شکل مبهم تلاغ داد میگن میاد چکار میکنه قرآن کشی گرچه که خیلی از فقه ها نظریات دیگه در این رابطه دارند که بیاد بعد تعین بکنه خودش یکی رو طلاق داده گفته اگه اگه اگه اگه مثلا یکی از زنان من چیه کدوم یکی آقا بعضی از گفتن اینجا بله قره کشی میکنند بعضی دیگه گفتن برش لازم میشه که باید بیا تعین کنه باید چی کنه حالا ما کاری به صحت یا عدم صحت فقه نهرم ولی این مثال رو ذکر کردند تضاهم حقوق هم به چه شکل هست؟ حقوق نه تنها اصلا خود مکلفین هم در تضاهم بودن مثلا پنجاه آقا همه هم خواستارند که چه کار از آن بگرد کار خیری دیگه یا مثلا تو محله یک مسجدی میخوان بسازند که همه حالا در ساختن نمسید میشه مثلا شریکشون کرد ولی کاری که یک نفر اونو باید انجام بده مثلا ازان و افراد هم زیادند افراد هم چیان؟ زیادند اینجا میگه چکار میکنند؟ با قرآه پس توستعمل القرآتو اندال مبهم من الحقوق قرآه استعمال میشه هنگامی که حقوق مبهم باشه اولاد تزاحمی یا هنگام ترافیک مکلفین چه باشند؟ زیاد باشند یا مثلا شخص میخواد از دو تا همسرش این دفعه اولین بارشه اینو ببره برای مسافرت دو داره خب اینجا از طریق چه حلش میکنه؟ از طریق قرعه حلش میکنه ولی اینجوری نیستا بعضی این حدیث رو اینجوری فهمیدند که همیشه شخص قرعه کشی بکنه خب شاید اینجوری حق دیگری زایی میشه برای اول بار این کار میکنه بار بعدی دیگه نوبه تون میشه این ادالت ادالت این رو تعیین میکنه توجه میشه آموسا حالا اگه ظاهری بیاد بگه که هر دفع قرار کشی بکنه خب بیتری شکل شادی که اصلا اسمش در نمی اومد ولی برای اول بار این قرار رو شخص انجام میده یا مثلا استاد ست شاگر داره یکی میگه این تفسیر رو انتخاب کنیم یکی میگه اونو یکی میگه چی؟ اونو و از میان استایی که هم انتخاب بشه برای راه حل خوب میاد چکار میکنه؟ قرعه کشی میکنه بالا پس و تو استعمل القرعه تو اند المبهم من الحقوق اولدت تزاحمی یا زمانی که تزاحم باشه ترافیک باشه و انتصاب العملان اجتمع و فعل احداهما فاستمعا و زمانی که دو عمل هم مساوی بودند هم جمع میشند و یکی آن دو انجام میگیرد. فاستمع بشنو به چه شکل شخص اومده در مسجد سنتهای قبی فجر نخونده خب اینجا چیکار میکنه و تهیه المسجد هم پیغمبر خدا علیه الصلاۃ والسلام میگه اومدید بخونید خب اینا با هم مساوی هم این دو هم هم این سنت همون اینجا میاد جمع میکنه اذا میچکار میکنه میگه شافعیه اومدن اینو نپذیرفتن ولی صحابه انکارو کردند پس اذا اجتمعا اذا انت وانت العملان اجتمعا زمانی که دو عمل با هم مصادف باشن با هم چی میشن جمع میشن و فعل احداهما و یکی تو چی میشه انجام میشه چی sao بله اینو هم در قواعد اینجوری میارند که اذا اجتمعا عبادتان من جنس واحد يجوز ادخال احداهما في الأخرى زمانی که دو عبادت از یک جنس باهم هم جمع شدند جایز است که یکی در دیگری چیکار کرد وارد کرد و با یک تیر دو نشان وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل میگه هر مشغولی بار دیگر دیگه مشغول نمیشه یه چیزی که اومد مشغول شد المشغولو لا شغل المشغولو لا شغل قاعده فقی میگه و کل مشغولین فلایو شغل و هر مشغولی بار دیگر مشغول نمیشه مثال المرهون المرهونو والمسبل مثالش مانند چه؟ مانند مرهون چیزی رو شما در رحم گذاشتی آقا این اتاقه رو من به شما دادم رحم من از شما میان چیزی میخرم شما اعتماد نداری به خاطر محکمکاری رهنی از من میگیری به عنوان مثال این اتاقه رو من به شما دادم چی؟ ره الان این مشغوله ره در ره گذاشته من دیگه نمیتونم اینو بیام اجاره بدم. پس و کلو مشغول فلای و و هر مشغولی دیگه دوباره مشغول نمیشه مثال هو المرهول مثالش رهنه والمسبل و وقف اون چیزی که در فی سبیل الله داده شده است وقف و من این چیزو دادم وقف نمیتونم بیام بفروشمش تو مشغوله تون چیه؟ مشغوله و بیت بعدی و من یعدی ان اخیه واجبا له الرجوع انو يطالبا و هرکس ادا کرد از برادرشی حقی رو واجبی رو له الرجوع این شخص ادا کننده حق داره که بره نزدش خب یه حقی برگردن شما بوده من اومدم اینو چکار کردم؟ ادا, ادا کردم من این حق دارم که بیام پیش شما و بگم که آقا من این حق رو شما ادا کردم به من بده ولی به چه شرط؟ اگر نیت مطالبه رو داشته اگر نیت چه رو داشته؟ مطالبه. که ازش مطالبه بکنیم بلی در بعض امور شخص نمیتونه واجبی رو از گردن دیگه ادا بکنه مگر با اجازهش مثلا در بحث زکات خود زکات حق شرعی شماه. من اینجا نیت با زکات با نیت شما پرداخت میشه اگر من خواستم که این رو از حقش از گردن شما ادا بکنم به فقه ها گفتند که اینجا باید بیام چیکار کنم اگر شما اجازه دادی در این صورت چیکارش کنم اداش کنم پس ومن يؤدي ان اخيه واجبا له الرجوع ان هو يطالبه هر کس ادا کرده از برادرش واجبی رو حق رجوع دارد اگر نیت کرده بود که يطالبه که چکار کنه مطالبه کنه اما اگر بعض ها میگن اگر نیت نکرده بود اون موقع هیچ دیگه اجرش رو میبره ولی حق رجوع نداره که بعضی گفتن نه حق رجوع داره چلو فان والوازع التبعی عن العصیانی كالوازع شرایی بلا نکرانی وازع تبعی وازع یعنی راده یعنی نگهدارنده یعنی اون کارایی که سبب میشن شخص دنبال جرم و جنایت نره مثل حد و حدودات میگه الو الوازع الطبعی انه الحسیانی وازع طبعی یعنی با طبع اونو چکار کردند؟ قرار دادند معنی خوردن سمدارا اونایی که سمی هند وازع به معنی رادع یعنی آنچه که انسان رو زجر میکنه، نه میکنه، باز میداره پس و و طبعی عنه الاسیان وازی از گناه که الواضع مانند واضع شرعی هست اقوباتی که در شریعت اومده مانند کفاره ها ها؟ مثلا کفاره رو شریعت یک وازعی می داشته تا شخص این کار رو انجام نده یا حدودات بله. و الوازئ الطبيعي عن الاسياني كالوازئ الشرعي بلا نكراني وازئ تبعي از گناه به مانند وازئ شرعي هست یعنی حکمشو میگیره بلا نكراني بدون فرق بدون فارق اینو متوجه شدیم مولوی بله واضع تبعی، اون واضعی هست که بله مثل نجاسات. خب این یه چیزیه که مردم تبلیغات کردن تو نفسو در طبع چه شده؟ اومده هست. و سبب میشه که انسان به سمت این نجاسات نره. والواذیع التبعی عن الاصیانی كالواذیع الشرعی بلا نکرانی مانند واضع شرعی هست. خود واضع اون چیزی رو میگن که انسان شکار میکنه؟ سبب میشه که انسان به سمت اون کارهای حرام و به کارهای نامشروع نره. فالازوازن التبعیک الواز الوازع التبعیک الوازع الشرعی مثلا شلاق زدن زانی یک وازع هست. یک چه هست؟ بعضی از واضحات طبعی ها در تبع، در سرشت در چی؟ انسان مانه میشند که دنبال کار نره در این، در، در از این جهت که مانع میشند بحث از این جهت نگیم که حکم اونا رو میگرند براشون حدود میاد و براشون قصاص میاد حدود میادن بس الواضع الطبعي عن العسياني الشرعي بلا نكراني إن آخرين بيت حاس ما مسايا والواضع الطبعي عن العسياني كالواضع الشرعي بلا نكراني واضع همون راده هست همون معنی هست همون چیزی که سبب میشه انسان به سمت چیزی نره میگه واضع طبعی از گناه مانند واضع شرعی هست بدون فارق بلا نکرانی بدون فارق پس ما دو تا دو نوع واضع داریم واضع شرعی و واضع طبعی واضع شرعی معنند حدودات اینا اومده اند خاص سبب بشه که شخص به سمت گناه به اون گناه نره واضع طبعی در بعضی ها خدا مند صبحان واضع شرعی قرار نداده همون واضع طبعی رو بهش اکتفا کرده مثلا برای خوردن نجاسات و محرمات واضع شرعی قرار نداده مثل حدود و این چیزا عقوبات قرار نداده در نجاسات همون طبع آدمی میل نداره که به سمت چی بره به سمت نجاست بره این میگن واضع چی تبعی واضع تبعی پس میگه وال الواضع التبائع كالواضع الشرعي واضع التبائع مانند واضع چیه شرعیه از اون جایی که یه واضیی بوده یک واضیی بوده یک نگه‌دارنده‌ای بوده دیگه خداوند سبحان بهمون اکتفا کرده که یه واضع شرعی در دنیا قرار نداده همینی که انسان اومدن بر علیه نجاست تبلیغات کردند خود در طبعشون یه چیزی اومده که همون نفرت یه واضعه یه چیه؟ انسانو ها چکار میکنه؟ باز میداره از اون کار باله پس والواضع الطبعی انی العسیانی که الواضع الشرعی بلا نکرانی واضع تبعی از گناه بمانند واضع شرعی هست بدون فارق، بدون نکران والحمد لله علی التمامی فی البدی و الختام و در آخر دو بیت همان که کتابش رو با حمد و صنایی الهی شروع کرده بود کارش رو هم با حمد کار میکنه پایان میده و این ازشی شیوهی و ده به انسان های صالح والحمد لله على التمامی که بعد از پایان هر کار چکار میکنند شکر خدا میکنند حمد خدا میکنند سنای خدا میکنند اگر اون کار به نفسشون بوده کار خوبی بوده میگن الحمدلله اگر مصیبتی بوده باز حمدی کنن ولی میگن الحمدلله على کل حال پس اینجا دیگه این نعمت برش تمام شده میگه چه والحمدلله على تمامی سپاس حمد و ستایش الله را به خاطر کامل بودن في البدعی و دوامی در ابتدا و ختام و دوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. سبس ترود السلام فراوان بربيان بر وأصحابه والتابعين والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه وتابه تا ان ای کار این کتاب ما موصط میشه ولی این اولین و آخرین کتاب نباشه که ما خوندیم بخاطر اینکه خوندن اصول فقه خوندن قواعد فقهی و مقاصد شریعت اینا سبب میشن انسان فقهی وسیع داشته باشه مثل قدیم مثل قدیم فقه قدیم شما اگر برید اصول امام ابو حنیفه نعمان امام مالک شافعیه و فقهای دیگر رو بخونی متوجه میشی که چه داشتند؟ یه وسعتی داشتند یه قوائدی داشتند ظاهری بار نیومدند به خاطر این که نظریاتی وسیع در زمینه معاملات و عادات دادند نظریاتی که خیلی وسیعی در باب روی مسلحت مرسله و استحسان و عرف و دیگر عدله که مختلف ها هستن کار کردند و شما میبینید که الان هم بسیاری از اولمای، از ارث این بزرگ این اولمایش کار میکنن، استفاده میبرن. مخصوصا اونایی که به تمام علما رجوع میکنند، نگاه میکنن اصول کدومیکی وسیtere، قویتره، بهتره انتخابش میکنند. امروز نظریاتون متفاوت هستن با اون شخصی که میاد. مثلا روی اصول امام ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه کار میکنه بیشون مسلمه که وزعه از زمین تاسمان اصولش با امام ابو حنیفه نومن مثلا فرق داره امام منفی یک مسلحتگرای بوده که اون مقاصد کلی شریعت و علل احکامو در نظر گرفته و اومده حکم داده است ولی امام ابن حزم رحمت الله علیه فقط میاد همون لفظ حدیث و که چه گفته چیکار کار میکنه؟ بله بدارش میکنه لذا توصیه من بر همین است که ان روی این سه کتاب به خوبی چه بشه کار بشه